جوانمرد که بخورد و بدهد، به از آبد که روزه دارد و بنهد. هر که ترک شهوات از بحر خلق داده است، از شهوتی حلال در شهوتی حرام افتاده است. آبد که نه از بحر خدا گوشه نشیند، بیچاره در آگینه تاریک چه بیند.